قصه های هزار یک شب شب سی و چهارم. چون رئیس کشتی پاسخ داد که به بقداد همی روم نورالدین با انیس الجلیس به کشتی نشستند و ناخدا کشتی براند که کشتی چون مرغ پریدن گرفت و باد مراد به وزیدن آمد. نورالدین و انیس الجلیس را کار بدین گونه شد. و اما غلامان سلطان به خانه نورالدین آمده درها بکندند و قرفه ها بشکستند از نوردین اثری نیافتند خانه را ویران کرده خبر پیش سلطان بردند که نوردین پدید نگشت سلطان را خشم فرو گرفت گفت در هر کجا که هست بایدش به دست آورید بنساوی گفت که از چون من نتواند که او را پاداش دهد پس ملک بفرمود که ندا در شهر بدادند که هر کس نور را پدید آورد هزار دینار زر و خلعت گرانبها از ملک جایزه دارد و آن کس که او را پنهان دارد و یا جای او دانسته نگوید مستوجب عقوبت ملک خواهد بود خادمان و مردم شهر نوردین را جستجو همی کردند ولیکن نوردین با انیس الجلیس سلامت به ساحل رسیدند پنج دینار به ناخدا داده از کشتی به در آمدند و همی رفتند که پیش روی قضا ایشان را به باغهای بقداد رهنمون شد به کوچه رسیده دیدند که آب زده و رفتند و این سو و آن سوی کوچه مسبطهاست و در چندین جا حوضهای سنگ پر از آب صاف است و آن کوچه سرپوشیده بود و در بونگاه کوچه دری بود بسته نورالدین با انیس الجلیس گفت خوب جای آسایش است در حال به فراز مستبه نشسته روی از گرد راه بشستند و خوردنی خورده به خوشبیدند. بازار اندر آنجا باقی بود که باغ می میگفتند و به باقندر قصری بود که قصر تفرجش مینامیدند و خلیفه هارون الرشید هرگاه که ملول و دلتنگ گشتی به آن باغ و قصر در آمدی و در آن قصر خلیفه ایوان چهلدری داشت و هشتاد قندیل بلور به دانجا آویخته و هشتاد شم دان زرین با شمهای کافوری گذاشته بودند. چون خلیفه بر ایوان برنشستی درها میگشودند و شام ها و اسحاق موصلی و کنیزان نقم پرداز نغمه همی پرداختند و خلیفه را نشاط و انبساط روی میداد. در آن باغ مرد پیری باغبان بود که شیخ ابراهیم نام داشت و از خلیفه به شیخ ابراهیم باغبان فرمان رفته بود که اگر بیگانگان به باغ اندر یا به گرد باغ بگردند باغبان ایشان را بیازارد در آن حال باغبان به سوی باغ آمد و دوتن به زیر یک چادر در فراز مستبه خفته یافت گفت مگر اینها ندانسته اند که خلیفه مرا امر فرموده که هر کسی را در اینجا ببینم بکشم آنگاه پیش رفته دبوسی را که در دست داشت بلند کرد که ایشان را بزند با خود گفت شاید اینان قریب باشند و فرمان خلیفه را ندانند همان بهتر که چادر برداشته بدانم که ایشان قریبه اند یا نه پس چادر به یک سو کرده آن ماه تلعتن را بدید با خود گفت که این هر دو زیبا منظر را آزردن نشاید باز چادر بر ایشان بینداخت و در زیر پای نورالدین نشسته پای او همی مالید که نوردین چشم باز کرد مرد سال خورده ای را دید که پای او همی مالد شرمگین گشته پای خیشتن جمع کرد و راست بنشست و دست شیخ ابراهیم را گرفته ببوسید شیخ ابراهیم گفت ای فرزند از کجایید؟ نوردین گفت ای شیخ قریب هستیم این بگفت و گریان شد شیخ ابراهیم گفت ای فرزند پیغمبر علیه السلام به گرامی داشتن قریبان وصیت فرموده برخیزید و به باقندر تفرج کنید نوردین گفت ای شیخ باق از آن کیست؟ شیخ ابراهیم خواست که ایشان بیم نکنند و به خاطر آسوده به باغ اندر آیند. گفت که این باغ از پدران من میراس مانده. علی نوردین چون این بشنید او را سپاس گفت. آنگاه شیخ از پیش و ایشان بر اثر او به باغ اندر شدند. باقی دیدند خرم به که شاعر گفته درخشان لاله در وی چون چراغی ولی که از دود او بر جانش داغی شقایق بر یکی پایی استاده چو بر شاخ زمرد جام باده پس باغبان ایشان را به قصر آورد علی نوردین در منظره بنشست و شیخ ابراهیم خوردنی همه گونه میوه ها حاضر آورد. ایشان خوردنی خورده دست بشستند. علی نوردین با شیخ ابراهیم گفت احسان بر ما تمام کردی و آنگاه تمام تر است که شراب نیز بهر ما بیاوری. شیخ ابراهیم اعدهی آب شیرین و صافی بیاورد نورلدین گفت این را نخواستم شیخ ابراهیم گفت مگر می همی خواهی؟ نورلدین گفت آری جامی که شراب ارقبانی است درو آبی است که آب زندگانی است درو زان باده که جانهای نهانی است درو پیری است که آتش جوانی است درو شیخ ابراهیم گفت اعوذ بالله سیزده سال است که من چنین کارها نکردهام پیغمبر علیه السلام فرموده که نفرین خدا بر گسارنده و فشارنده و بردارنده شراب باد. نوردین گفت با تو سخنی گویم اگر تو می نگساری و نفشاری و بر نداری از این سنفرین بر تو هیچیک یک خواهد رسید شیخ گفت لا والله نوردین گفت این دو دینار به و این دو درهم نیز بگیر به درازگوش نشسته سوی میخانه رو و از دور بیست چون بینی که کسی شراب همیخرد او را آواز ده و بگوی این دو درم مزد تو و بدین دو دینار می بخر و بر دراز گوش بار کن چون چنین کنی نه گسارنده باشی نه فشارنده و نه بردارنده و نه مشتری و از نفرین نبی چیزی بر تو نخواهد رسید شیخ ابراهیم بخندید و گفت کس از تو زریفتر و خوش ندیده بودم نوردین گفت یا سیدی ما امروز تو را مهمانیم باید خواهش ما را به جای آوری شیخ ابراهیم گفت ای فرزند به سرداب اندر خمهای شراب است که بهر خلیفه مهیا کرده اند. تو به سردابه شو و آنچه که خواهی بردار. نوردین به سردابه اندر شد. دید که خمهای شراب به یکدیگر پیوستند و قنینه ها و قرابه ها و ساتکینها به هر سو فروچیده پس قرابه چند پر از شراب کرده با انیس الجلیس به بابد گساوری بنشستند و شیخ ابراهیم دور از آن ماه روی نشسته همینگریست چون شراب بر ایشان چیر شد و چهره ایشان سرخ و چشمان ایشان مست گردید شیخ ابراهیم با خود گفت چرا من از ایشان دور باشم کی خواهد بود که دولت وصل چنین دو ماه روی دست دهد پس نزدیک آمده به یک سوی ایوان بنشست نوردین گفت ای شیخ به جان منت، سوگند میدهم که نزدیک آیا پیشتر بنشین. شیخ ابراهیم پیش آمد و نزد ایشان بنشست. نورالدین الدین قدهی پر کرده به داد. شیخ ابراهیم گفت، اعوذ بالله، من سیزده سال است که چنین کار نکرده ام. نورالدین ادعای خود را بنوشید و بیافتاد و چنان بنمود که مستی بر او قلب کرده. پس انیس به شیخ ابراهیم نگاه کرده گفت: یا شیخ، کار این پیوسته با من همین است که ساعتی با من باده گسارد، پس از آن به خصبد و مرا تنها گذارد. آنگاه کسی هست که قده از من بستاند و یا قده به من دهد و یا نقمه های مرا بنیوشد شیخ ابراهیم را دل از دست رفته به سخن گفتن او مایل شد و گفت از پس پنجاه سال عشق من کرد یاد از بر من رفته بود روی به من چون نهاد پس با خود گفت چنین ندیم کی دست خواهد داد آنگاه انیس الجلیس قدهی پیش شیخ ابراهیم آورد و او را سوگند داده گفت به خاطر این قریب دل شکسته من بنواز و این بنوش شیخ ابراهیم قده بگرفت و بنوشید و گفت بودم میان خلق یکی مرد پارسا قلاش کرد نرگس جمعاش مرا پرهیز کرده بودم و سوگند خورده نیز که از بحر کام دل نشوم فتنه بلا از بس که کرد چشم تو نیرنگ و جادویی پرهیز من هدر شد و سوگند من حبا. هبا عنیسالجلیس قده دیگر پیمود شیخ ابراهیم قده گرفته بنوشید و گفت ساقی باده از این دست به جام اندازد زاهدان را همه در شرب مدام اندازد پس قده سوم به شیخ ابراهیم داد شیخ چون خواست بنوشد نوردین برخاست و راست بنشست پس بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است.